خشم بی حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت حیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر کردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. درشتی و نرمی به هم در بهست چو رگزن که جراح و نه هست. درشتی نگیرد خردمند پیش، نه سستی که نازل کند قدر خیش، نه مرخیشتن را فزونی نهد، نه یک تن در مزلت دهد، شبانی با پدر گفته خردمند، مرا تعلیم ده پیرانه یک پند، به گفتانیک مردی کن، نه چندان که گردت خیره گرگ تیز دندان